فصل توصیه برای والدین این فصل به والدین اختصاص یافته که تکالیف شبانه و درس هایی که باید توسط فرزندانشان در منزل فرا گرفته شود به دقت دنبال نموده و کنترل می کنند تمرینات مزبور بسیار مهم هستند زیرا غالبا کار مهمی بوده و در نتیجه نیاز به نوعی تمرکز ذهن و تلاشی مداوم دارد. به همین دلیل بهتر است هدایت شده و تحت کنترل قرار گیرند. مسلماً این تمرینات بایستی در سکوت و آرامش انجام شود. در مورد مسئله مورد نظر ما توصیه‌هایی که در اکثر فصول گذشته ارائه شده به طور کلی برای محسلین نوجوان، دانشجویان و بزرگسالان سالان میز به خوبی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در این حال برای کودکان میتوان خودتلقینی را توسط جلساتی از تلقین که در قسمتهای بعد توضیحاتی در مورد آنها خواهم داد جایگزین ساخت. پس از این مقدمه حال ببینیم حافظه چگونه در کودکان متحول می شود تا والدین بتوانند رفتار خیش را نسبت به مراحل مختلف آن تنظیم کنند. بخش اول تحولات حافظه در کودک حافظه در کودکان بسیار کم سن که هنوز صحبت نمی اساساً حافظه ای ارگانیک است که از طریق حرکات و عادات تظاهر می کند. بازشناسی برای او آغازی برای خودشناسی ورای می باشد. از نظر کلی و عمومی همان گونه که ماری خوزه هوارو در کتاب روانشناسی خود نوشته است تفکر کودکانه قبل از آغاز صحبت کردن تقریبا برابر با هوش یک میمون است این هوش عملی بوده و توسط واکنش‌هایی که کودک از طریق آنها سعی در ایجاد نتیجه به دست آمده بر حسب تصادف دارد مشخص می‌گردد تنها از زمانی که کودک شروع به تکرار نامفهوم کلمات می‌کند به تدریج حافظه‌ای در وی تشکیل می‌شود که می‌توان به آن روانی گفت زیرا زبان وسیله برتر بلوغ هوشی و فکری میباشد این حافظه سه مرحله متوالی را طی می‌کند مرحله اول به نوعی واقعی است، زیرا در رابطه با اجسام و مسائل ملموسی که ذهن آنها را به خاطر می آورد، به کار رفته و آنها را به همان صورتی که درک شده و با همان پیچیدگی کامل ارائه می کند، این حافظه ذخیره و تکیگاه تمام انواع دیگر حافظه است. بنابراین مربیان و والدین باید تلاش کنند که همواره آن را وسیع، محکم و گسترده نگاه دارند. سپس حافظه گفتاری به وجود می آید که آن را همچنین می توان حافظه بازگوی نیز نامید و پیشرفت‌های بعدی آن به دنبال پیشرفت در گفتار و سپس در خواندن و نوشتن ایجاد می شود. بخش مهمی از این حافظه حاصل فعالیت‌های تحصیلی می باشد و سرانجام حافظه صرفن هوشی و ذهنی به تدریج رشد می کند که جایگاه افکار قوه تشخیص و استدلال است. در واقع این حافظه باید قبل از حافظه گفتاری به وجود بیاید زیرا یک کلمه یا تلفظ قبل از به خاطر سپرده شدن باید فهمیده شود ولی معمولاً عکس این حالت به وجود می آید افکار کودکانه در واقع بیش از هر چیز دیگری در اختیار سفسطه گفتاری که بر اثر آمادگی جهت قبول کلمات به جای واقعیت ها به وجود می آید قرار می گیرد این اشتباه بزرگ که اشتباهات دیگری نیز از آن ناشی میشوند، بر اثر نقص ارتباطی که بین کلمات مبهمی که به کودک گفته می شود و غنای بسیار کم تجربیات او وجود دارد ایجاد میشوند. اگر کودک کلمات زیادی را بداند، معمولا تجربه وی در این رابطه کم است. همچنین کلمات دارای دو معنا، دو پهلو نویسی و مپمات در ساختارهای دستور زبان و جملات مربوط به صف‌ست گرایی گفتاری غیرقابل قابل اجتناب هستند به عبارت دیگر بخش مهمی از کلمات، اصطلاحات و تعبیرات برای کودک تقریباً بیمعنی هستند در این حالت والدین باید مراقب باشند که در صورت نیاز توضیحات لازم را به کودک بدهند و این مسئله به همان اندازه برای کودک مهم است که حافظه واقعی و حافظه گفتاری به صورت طبیعی خیلی فعال هستند. به همین دلیل، غالباً به کارگیری آنها لذتی واقعی برای او به وجود می آورد. به هر حال، این کار به تلاش بسیار کمتری نسبت به حافظه هوشی و ذهنی نیاز دارد. به صورتی که کودک از تبدیل تمریناتی که در منزل انجام داده، به تمرینات بازگویی و حافظه تردیدی به خود راه نمیدهند و این مسئله مسلما برای یک فعالیت سالم هوشی و ذهنی مورد نیاز است. همچنین متذکر می شوم آزمون هایی وجود دارند که به آنها آزمون حافظه گفته شده و به روانشناسان حرفه ای این امکان را می دهد که بگویند به طور کلی حافظه کودک خوب یا ضعیف است. البته من آنها را در اینجا مطرح نمی کنم. زیرا استفاده و تعبیر آنها مشکل بوده و به نظر من هنگامی که کودکی در این ها شکست می‌خورد تایید این که او حافظه ضعیفی دارد خطرناک می‌باشد زیرا اغلب کافیست انگیزه های مربوط به حافظه در کودک بیدار شوند تا وی نتایج مثبتی را به دست بیاورد از سوی دیگر هوش به طور کلی و حافظه به طور خاص در کودکان در حال تغییر و تبدیل بوده و بحران‌های ناگهانی ناگهانی می میتواند آنها را متغیر سازد. به وانی دیگر، بدون آنکه به تحقیقات عمیق روانشناسی مراجعه کنیم، می توان مثلا با پیگیری تکالیف درسی کودک مشاهده کرد که آیا وی دارای حافظه ای پایدار و مناسب یا حافظه ای کند و تنبل، حافظه ای فعال ولی فرار و یا حافظه ای کند و گیرنده است. به عبارت دیگر همان گونه که خواهید دید تعیین نوع حافظه در کودکان کار ساده است که البته برای شناخت کودک نیز مفید می باشد. بخش دوم تعین انواع حافظه در کودکان همه کودکان دروس خود را به یک شکل فرا نمی گیرند زیرا تمام آنها دارای یک شکل حافظه نیستند ادهی از کودکان خواندن دروس را در جای آرام فرا می گیرند. این افراد دارای حافظه خصوصاً بینایی می باشند دیگر برای حفظ درس خود نیازمند خواندن آن با صدای بلند یا آهسته هستند زیرا حافظه بینایی ایشان کما بیش ضعیف بوده و در نتیجه از حافظه شنوایی خوبی بهرهمند هستند. در نتیجه نباید از دسته دوم دقیقا همان روش کاری را انتظار داشت که از دسته اول انتظار دارید. در عین حال والدین نباید کودکان خیش را از یادگیری دروس با بلند خواندن آن تحت این عنوان که بیهوده سر و صدا می‌کنند منع کنند. من کنند. زیرا این گروه به نوع حافظه شنوایی متکی بوده و خواندن دروس به این شکل برایشان مفید است. بنابراین دانستن این که کودک در کدام نوع از حافظه توهر دارد مفید است. برای دانستن نوع حافظه در فرزندان مثلا 20 کلمه را برای او خوانده و وی را وادار می‌سازیم تا همراه با ما تکرار کند. سپس از او می‌خواهیم کلمات خوانده شده را بنویسد. پس از آن به او 20 کلمه دیگر را که روی کاغذ نوشته شده اند داده و تقریبا همان اندازه وقت را که در تمرین قبل برای یادگیری و نوشتن به او داده ایم برایش قائل شویم. پس از تناوب چهار یا پنج بار از این دو روش آزمایش که البته برای هر کدام باید از کلمات متفاوتی استفاده شود، یادد او را تثح کرده و به آنها نمره میدهیم. در این رابطه سه حالت ممکن است به وجود بیاید. کودک اکثر کلماتی را که در چهار یا پنج آزمایش شنوایی برایش خوانده شده حفظ کرده و بنابراین حافظه او خصوصا شنوایی و موتریس است، یعنی صدایی. کودک خصوصا کلماتی را که خانده و سپس نوشته است به خاطر می آورد. در نتیجه وی متعلق به گروه بینایی و حرکتی می باشد. و سرانجام کودک تعداد تقریبا مساوی از کلمات را از مجموعه شنوایی و بینایی به خاطر می سپارد که در این حالت حافظه وی مخلوطی از دو گروه بالاست. پس از مشخص شدن این مسئله، والدین می توانند همانطور که گفته شد کودک را به استفاده از ای که در وی قوی تر است ترغیب کنند. در این حال بهتر است که وی بیش از حد از این روش خاص استفاده نکند. زیرا همانطور که جی بوشر می نویسد، هنر آموزش به شکلی که امروزه آن را میشناسیم شامل رشد و شکفتن تمام استعدادهایی است که در هر فرد به صورت بالقوه وجود دارد بنابراین به عنوان مثال یک شخص دارای حافظه بینایی باید ضمن تکیه کردن بر این حافظه دو نوع دیگر حافظه را نیز تقویت کند به طور خلاصه تمام انواع حافظه باید تا حد امکان بر حسب شرایط تمرین داده شده و در همان حال بایستی به طور کلی یکی از آنها را کاملا قابل استفاده ساخت و این مسئله است که آن را در فصل نهم توضیح دادم از سوی دیگر منحصر شدن به یکی از انواع حافظه نیز خطرناک است در واقع دیدیم که حافظه های خاصی روی یکی از انواع یاداوری ها وجود دارد که سایر حافظه ها نقش ضعیفی را در آن ایفا می کنند بنابراین بهتر است تمام انواع حافظه را برای آنکه بتوانند در صورت از بین رفتن یکی از آنها جانشین دیگری شوند تقویت کرد. بیشک بیماری بیماری‌های یادزدودگی نسبتا استثنایی است ولی در عوض نیم هایی که در آنها نوعی از حافظه به سختی ظاهر می‌شود از پدیده‌های رایج و حتی می‌توان گفت روزمره محسوب می‌شود. از این مسئله نتیجه میگیریم که با رشد همزمان حافظه بینایی و شنوایی عمل حفظ کردن راحت تر و حافظه قوی تر می شود زیرا در موارد مختلف حافظه شنوایی به کمک یک حافظه بینایی ضعیف آمده و آن را تقویت و در صورت ناقص بودن تکمیل میکند به طور خلاصه کودک و بزرگسال در صورتی که به جای یک نوع چندین حافظه در اختیار وی باشد چیزها را بهتر و به شکلی دقیق تر و کامل تر به خاطر می آبرد. بخش سوم، اصول کلی آموزش حافظه در کودکان قبل از هر چیز همانگونه که قبلا نیز متذکر شدم، باید در کودکان حافظه را قبل از حافظه کلمات یا فرمول تقویت کرده و همواره آن را فعال و متحرک نگاه داشت. و حتی در زمانی که حافظه کلمات یا فرمول ها در حال رشد است نیز، این کار را ادامه داد. بنابراین، کاربرد آنها باید تا حد امکان در تمام جهات باشد. هر اسمان می نویسد ذهن اغلب از طریق نگاه آنقدر اطلاعات به دست می آورد که از طریق ماها شنیدن و ماها کار از طریق گوش به سختی می توان به آن حد از دانسته ها رسید. به دنبال آن، همان گونه که قبلا به شکل کلی در فصل نهم در فرازهای اشکال مختلف حافظه را با هم مورد استفاده قرار دهید و خاطره ها را با یکدیگر تداعی کنید گفتم والدین بایستی در تکالیف و دروسی که باید کنترل و هدایت کنند از چیزهایی استفاده نمایند که بتواند قوه درک و تخیل کودک را ضمن آنکه انگیزه را در وی بیدار میسازد تقویت کرده و او را وادار به کشف کند بدین ترتیب، برای یادگیری خواندن و املا، والدین می توانند حروف متحرکی را که محصلین نوجوان برای ساختن کلمات مورد استفاده قرار می دهند، به کار ببرند. برای ریاضیات ابتدایی می توانند از یک چرتکه و یا چوبهای تراشیده شده استفاده کنند. آموزش هندسه قدیمی و ابتدایی را می با ترسیم اشکال متنوع به کمک خطکش و پرگار و از طریق ساختن احجام هندسی با کاغذ یا مقوا از طریق تمرینات اندازگیری احجام و غیره را تقویت کرد همان گونه که قبلا نیز در فصل نهم مطرح کردم می توان از مهره های بازی ریسمان های کوچک با رنگ های مختلف ستاره های ریز و جداولی که در ریاضیات جدید به کار میروند برای توضیح تئوری مجموعه ها به کودک استفاده کرد. در این رابطه، مشکل بودن ریاضیات جدید بسیاری از والدین را که در برابر مسائل پیچیده آن قرار میگیرند نگران میسازد. این موضوع از سویی به این دلیل است که این مسائل دارای زبان خاصی هستند و از سوی دیگر برای نزدیک شدن به مکانیسم منطقی آن باید مرحله جهان ملموس را ترک گفت. در نتیجه، مطالعه آنها باید مانند مطالعه یک زبان خارجی از طریق شناخت کلمات و ترکیباتی باشد که در آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در مرحله دوم، بایستی پس از انتخاب موضوعات اولیه این از مجموعه، زیر مجموعه و غیره با رها کردن سایر موضوعات با کمک اصول منطق کار را ادامه داد. ولی از نظر من، آموزش ریاضیات نباید به مطالعه ریاضیات مدرن محدود شود. علوم، حساب و هندسه قدیم نیز اهمیت خود را داراست. زیرا در غیر این صورت همان گونه که استادان ریاضی در کنگره سال 1980 در بردو متذکر شدند یک چهارم دانش آموزانی که به مقطع راهنمایی میرسند، عمل ضرب را فرا نگرفته و برخی حتی عمل جمع کردن را نیز بلد نیستند در درس تاریخ تصاویر، جداول، اشیاء و در صورت امکان بازدید از اماکن و ابنیه تاریخی به یادگیری درس کمک خواهد کرد. در درس جغرافیا، کره زمین و نقشه‌های مختلف می مورد استفاده قرار گیرد. کشیدن تصاویری ساده از این نخشه ها کار عملی است. خصوصاً در آموزش های علمی، والدین می توانند مشخص و دقیقی را که دروس را غنیتش ساخته و کار حفظ آنها را به مقدار قابل ملاحظه‌ای تسهیل می به کار ببرند. این کار را میتوان در مورد بررسی سنگ ها، گیاهان، حیوانات، جمع آوری های گیاهی یا حشرات، آزمایش های اولیه فیزیک و شیمی، گردش های علمی همراه با توضیح در طبیعت، بازدید از کارخانه ها و غیره انجام داد. یاداوری میکنم که این گردش ها و بازدید ها نباید محدود به یک موضوع خاص شوند. مثلا بازدید از یک کارخانه آجرپزی باعث نمی شود که تابلوهای راهنمایی، علائم نشاندهنده یک کیلومتر در جاده، احتمالا واقعی که در محل اتفاق افتاده، رودخانه، گیاهان، حیوانات، علائم تاریخی، تخمین فواصل، سطح یک مزرعه، ارتفاع یک درخت، یک تپه، یک کوه، سرعت اتومبیل و غیره نیز مورد توجه قرار نگیرد. همچنین میتوان مسیر حرکت خورشید و جهتیابی بر اساس وضعیت قرار گرفتن آن را نیز آموخت. در بازگشت میتوانید نتیجهگیری مختصری از این گردش را از دانش آموز بخواهید. این امر باعث میشود محصلین جوان در این رابطه برای ایجاد واکنش و حفظ و برداشت آن تلاش کنند. از سوی دیگر البته این مسئله کمی خارج از پرورش حافظه است. بهتر است والدین چند مثال را که از زندگی روزانه و بر اساس پایه های روانی کودک انتخاب شده باشند در هنگام تمرینات انشا و مطالعه اخلاق وی مورد استفاده قرار دهند. مسلما استفاده از روش های عقلی و فعال به این معنا نیست که باید حافظه گفتاری را نادیده گرفت. در واقع در اکثر اوقات از طریق حافظه گفتاری کلمات مسائلی را به خاطر میآورند که از طرق دیگر نمیتوان آنها را به یاد آورد. به بدین ترتیب اگر صدای شخصی را به خوبی به خاطر بیاورم، آن شخص در ذهن من جای گرفته و او را می بینم و صدایش را می شنبم. در حالی که اندیشه او ممکن است بسیار ناقص و منظوی باشد و اصلا ندانم در چه موردی است. در این حالت ناگهان نام او به ذهن من میآید و درست مانند یک درخشش نور با یادآوری نام وی مکان و تمام شرایط اولین آشنایی و داستان این آشنایی در ذهن من آشکار می شود. بنابراین آموزش باید ارتباط بسیار نزدیکی با مطالعه کلمات و دیگر مسائل داشته باشد. ولی چیزی که باید در اکثر روش ها از آن اجتناب کرد تکرار خودکار مسائل حفظ شده است. آن هم بدون آنکه دانش آموز حتی معنای کوچکترین بخش آن را فهمیده و یا به عبارت دیگر کمترین تلاشی برای فهمیدن از خود نشان داده باشد. و در اینجاست که والدین می توانند به طرز فعالی دخالت کنند. گونه که قبلا نیز متذکر شدم، معمولا کودک علاقه شدیدی به استفاده از حافظه خود و بالاخص حافظه واقعی و گفتاری خویش دارد، زیرا این کار به تلاش کمتری نسبت به حافظه هوشی و ذهنی نیازمند است. نتیجه این امر این است که اگر والدین مراقب نباشند، محسلین جوانشان بیشتر از این پیشرفت نخواهند کرد. و همانطور که قبلا نیز در این مورد صحبت کردیم، تمرینات تحصیلی که در منزل انجام می شود به تمرینات حافظه و تکرار تبدیل می شود. در عین حال بایستی پذیرفت که برخی از مسائل را نیز باید از این طریق حل نمود. زیرا امتحان سطحی و حتی نسبتاً عمقی آنها همواره این امکان را نمی‌دهد که رابطه منطقی موجود بین آنها را تشخیص داد. بدین ترتیب، کودکی که اولین کلمات زبان خود را یاد می‌گیرد، تنها راهی که برای نگهداری آنها در حافظه خود دارد، تکرار مداوم آنهاست. در مراحل اولیه تحصیل یک زبان خارجی یا یک موضوع علمی نیز کلمات تعاریف و داده های اولیه ای وجود دارند و بایستی آنها را قبل از هر گونه مداخله منطقی حفظ کرد. مسئله مداخله منطقی تنها زمانی عملی است که اطلاعات شخص گستردهتر و عمیقتر شود. به عنوان مثال در یادگیری یک زبان تنها زمانی این حالت پیش میآید که مقدار کافی از کلمات را بدانیم تا بتوان بین آنها روابط دستور زبان یا ریشه ای را برقرار کرد. به عبارت دیگر، روی هیچ چیز نمیتوان چیزی ساخت. بخش چهار روم. اهمیت تکرار و انگیزش از میان تمرینات تحصیلی برای حافظه، تکرار قطعات انتخاب شده شعر یا نصر نقش مهمی را بر عهده دارد. این کار روش عالی برای یادگیری چگونه فکر کردن، چگونه حرف زدن و نوشتن به صورت صحیح و به اشکال متفاوت و ایجاد ذوق و شناخت زبان می باشد. از طریق تکرار ذهن کودک منطقی غریزی را به دست میآورد که در وی بسیار تر از اصول گنگ و مبهم املایی می تواند نفوذ کند برای به خاطر سپردن متونی که باید حفظ شود بهتر است والدین آن را با صدای بلند و حرکات و اعمالی که مناسب با متن باشد در برابر محصل بخوانند آنها باید مسائل اساسی در متن را مشخص کرده و جهت جملاتی را که به نظر گنگ میآیند مشخص سازند و از کودک نه تنها برای اطمینان از اینکه متن را فهمیده است بلکه همچنین برای وادار ساختن او جهت یافتن توضیحات و تعبیراتی که در حد توانایی هوش اوست سوالاتی مطرح کنند همچنین بهتر است نوجوان قطعاتی را که قبلا حفظ کرده به یک دفترچه جیبی منتقل سازد. زیرا اگر بخواهد این متون را مجددا ببیند تا خاطره آن را در ذهن خود نگاه دارد، مطالعه مجدد آن لازم است. در این حالت است که او به احتمال قوی، زیبایی را که تا آن زمان در این نوشته ها از نظر پنهان مانده و جنبه های جدیدی را که در مرحله اول در نیافته، و احتمالاً حقایقی که زندگی وی را روشنی بخشیده و او را در زندگی شایسته‌تر می‌سازد و افکاری که به وی نیرویی می‌بخشد و نصایحی را که در صورت امکان او را به راه راست هدایت می‌کند در آنها کشف می‌کند. در این رابطه گفته‌های گاستاو لانسون را بازگو می‌کنم. او می‌گوید این همان چیزی است که از کارهای ناشناخته مورد مطالعه باقی میماند." و فعالیت ذهن را تحریک می کند. قطعاتی که حفظ شده اند در حافظه جای گرفته و هوش کودکان را دقیقاً به خاطر همین ناشناخته بودنشان تحریک می کند. این قطعات به تدریج خود را در ذهن کشف کرده و کودکان را وادار به فکر کردن میسازد. به صورتی که کودکان روز به روز چیزهای بیشتری در این قطعات ادبی یافته و در همان زمان که این دانسته ها بیشتر می هوش خود را نیز افزایش میدهند. در اینجا پرانتزی باز می کنم تا این مسئله را بهتر توضیح بدهم. اصولا بایستی همیشه هنگامی که کودک را دعوت به یادگیری چیزی میکنید، از نزدیک مراقب انگیزش در او باشید. خصوصاً اگر او خیلی کم سن باشد و نفهمد چیزی که یاد میگیرد به چه دردش میخورد. در حالی که ما میدانیم برای آینده من یاد میگیریم و مسائلی را که در رابطه با فعالیت‌های آینده باشد به خوبی حفظ میکنیم. به عبارت دیگر در رابطه با فعالیت‌هایی که به خودمان محدود نشده و ما را به نوعی برای سایر فعالیت‌های محدود آماده می‌سازند. این در حالی است همان‌گونه که متذکر شدم کودک جوان نمیتواند این رابطه را درک کند. او بر اساس تجربه حاضر خود زندگی می‌کند و فقط در حوالی سنین نوجوانی است که آینده برایش واقعیت پیدا کرده و روی رفتار تحصیلیش تأثیر می‌گذارد. ولی میتوان به وی انگیزه های آنیتری را که بیشتر در دسترس او باشند فقط از طریق بازگشت به عقب از راه امتحانات دوره‌ای که زمانی بسیار رایج بود و امروزه متاسفانه توسط اکثر متخصصان کنار گذاشته شده ولی من مایلم که مجددا برقرار شود ارائه کرد این آزمون ها اگر بدانیم که چگونه آنها را به آزمون هایی آسیب زننده تبدیل نسازیم بسیار مفید هستند آزمون های مضبور برای بازخانی و دوره کردن دروست و از سوی دیگر به خاطر اینکه برای هر درس انتهای ایجاد می شود و فعالیت های کودک را به تلاش های باز تبدیل می کند اطمینان بخش هستند. در رابطه با مطالعه تاریخ، جغرافیا، علوم و غیره والدین باید بررسی کنند تا اولین موضوعات، افکار، اصول یا عناصر رشته های مختلف درسی کاملا در ذهن کودک جای گرفته باشد. از همین جا سودمند بودن تکرار و همانطور که گفتیم بازگشت گهگاه به عقب که در آن روابط بین حقایق شناخته شده آشکار می شود، مشخص می گردد. همچنین سودی نیز که از طریق توقع بندی و جداول خلاصه شده که خلاصه واضح و روشن را از یک مجموعه موضوعات به دست داده و از طریق آن می توان روابط و زنجیره ها را بهتر درک نمود آشکار می شود. هر خلاصه باید چندین بار مطالعه شده و روی یک تابلوی سیاه نوشته و توسط کودک رو نویسی شود. به این ترتیب هر سنوحافظه می تواند وارد عمل شوند. در قسمت بعدی خواهیم دید که بهتر است در آموزش املا از هرسهه آنها در کنار یکدیگر استفاده شود. بخش پم آموزش املا از تدی افکار غلط جلوگیری کنید. اگر میخواهید به یک کودک املا را آموزش دهید نباید به وی امکان ارتکاب اشتباه را در دیتههایی که بد تهیه شدهاند بدهید در این رابطه قبل از تهیه یک املا بهتر از کلماتی را که محصل جوان نمیشناسد حذف کرده و دیکته آنها را به وی آموزش دهید. یک کلمه جدید، یک نام تاریخی یا جغرافیایی و یک اصطلاح علمی باید تکرار شده و با صدای بلند هجی شود. تاثیر شنوایی روی یک تابلوی سیاه نوشته شود، تاثیر بینایی. و توسط کودک در یک دفترچه داشت شود. تاثیر بینایی و حرکتی. در صورت نیاز چند اصل دستور زبان نیز یادآوری خواهد شد. هر کودکی از هر نوع حافظه‌ای که استفاده کند، از دیکتهای که به این صورت نوشته شود سود خواهد برد. مسلماً این روش را در تاریخ، جغرافیا و علوم نیز هنگامی که لغات تازه‌ای به کار رفته اند، می می‌توان مورد استفاده قرار داد. سپس متن را با صدای بلند بخوانید. تا کودک معنای کلی آن را فهمیده و در جریان املا مشغولیت دیگری جز نوشتن صحیح کلمات نداشته باشد. پس از آنکه دیکته انجام شد، آن را مجدداً هر سه تا شش کلمه یک بار با آهنگی طبیعی و بدون بالا بردن صدا ضمن توقفهای کوتاه در نخت گذاری ها و یا محلی از جمله که معنای آن اجازه یک توقف کوتاه را میدهد بخوانید. بخانید. هنگامی که متن بازگویی می شود، کلمه آخر املا بایستی یاداوری شود، تا اینکه قطعاتی که به دنبال هم هستند به صورت زنجیره ای درایند. محل ویرگول ها را توسط یک مکس کوتاه، محل نقطه ویرگول یا دو نقطه را توسط یک توقف طولانی تر و محل نقطه را با اعلام نقطه، یا نقطه سر مشخص کنید دست محصل را باید با چشم دنبال کرد تا دیکته خیلی سری گفته نشود هنگامی که دیکته به پایان رسید متن مجددا به اندازه کافی آرام خوانده شده و در محل علائم نقطه گذاری توقف می شود و بالاخره دیکته تصیح می شود در کار تصیح بایستی برای اشتباهاتی که بر اثر نواقص تردید آمیز به وجود آمده اند، کمی با گذشت باشید. ولی درباره اشتباهاتی که بر اثر بیتوجهی، نادیده گرفتن، تنبلی و یا بیتفاوتی در رابطه با اصول اساسی و دستور زبان به وجود آمده اند، سخت گیری کنید. به هر حال هرگز نباید به طور مستقیم و با صدای بلند اشتباهات املایی را که کودک انجام داده، مطرح سازید. مثلا نباید بگویید تو در اینجا یک تی را جا انداخته ای بلکه باید به او بگویید در اینجا باید یک تی بگذاریم و تو فراموش کرده ای که این تی را در اینجا بگذاری همچنین نباید از او سؤال کنید آیا کلمه مترادف حرف ت می یا نه در همین رابطه مثلا نباید از او پرسید جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع شد یا سال 1935 و یا اینکه ارتفاع قله اورست 8882 متر است یا 7882 متر زیرا حتی اگر پس از سوال پاسخ را نیز بگوییم کودک اعداد 1939 و 1935 و یا ارتفاع های قله اورست را با یکدیگر در خواهد آمیخت اگر کودک مبتلا به دیسلکسیا باشد آموزش املا اشکالاتی را ایجاد خواهد کرد. مسلما در صورتی که نیاز باشد، والدین باید به لغتنامه یا کتاب دستور زبان در مواردی که برخی از مسائل دستور زبان یا کلماتی که برایشان شناخته شده نیست و در مورد آنها شک دارند، مراجعه کنند.